عزیزان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در این دوره از بررسی کتاب مقدس تمامی کتاب های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه با تکید بر کاربردهای شخصی هر کدوم از این کتاب ها در عرصه های عملی زندگی رو بررسی می کنیم. اگر از ابتدای این دوره با ما بودین، می‌دونید که ما در نود جلسه کل احت قدیم رو بررسی کردیم. حالا به سفری با 90 درس از عهد جدید شروع می کنیم. ترتیبی بدیم که مرتبا در این سری از آموزش کلام خدا با ما همراه باشید. این شما و این معلم ما. ما ضمن بررسی کتاب مقدس 39 کتاب عهد قدیم رو بررسی کردیم و حالا در صدد هستیم که 27 کتاب عهد جدید رو با هم بررسی کنیم. هدف از این دوره بررسی اینه که به شما مقدمه ای از کل کتاب مقدس بدیم و هر کدوم از کتاب کتاب مقدس رو طوری مطالعه کنیم که بتونید یاد بگیرید. کتاب مقدس چی میگه؟ معنی چیزی که میگه چیه و برای من چه مفهومی داره؟ چطور میتونم این حقایق رو در زندگی شخصی خودم به کار بگیرم؟ ما دیدیم که 66 کتاب کتاب مقدس به ده گروه متفاوت بندی شدند. نه بر مبنای تاریخ نگارش اونها. بلکه بر مبنای محتویات آنها. عهد قدیم تشکیل شده از پنج کتاب شریعت دوازده کتاب تاریخ و بعد از اون پنج کتاب شعر هست و بالاخره عهد قدیم با کتابهای انبیای بزرگ و انبیای کوچک به پایان میرسه اینها پنج دسته از کتابهای عهد قدیم هستند کتابهای عهد جدید هم تحت پنج عنوان طبقه بندی شدهاند اول چهار انجیل رو داریم که از یک نظر زندگی نامی ایسای مسیح هستند و بعد یک کتاب تاریخ داریم، بعد به رسالات پولوس میرسیم، بعضی ها میگن سیزده و بعضی ها چارده رساله. برخی بر سر این که ابرانیان رو پولس نوشته یا نه اختلاف نظر دارن. بعد رسالات عمومی هست که توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده. عهد جدید با کتاب مکاشفه که یک کتاب نبوتی هست به پایان میرسه. اینها 5 پنج دسته کتاب های عهد جدید هستند. در ابتدا ما چهار کتاب عهد جدید رو بررسی میکنیم. هناجیل متا، مرقس لوقا و یوحنا. وقتی عهد قدیم رو بررسی میکردیم، من بارها گفتم که کدام کتاب ها و کدام بخش از کتاب مقدس بیشتر مورد علاقه من هست و برام اهمیت بیشتری داره. حالا جدای از شوخی، وقتی به چهار انجیل میرسیم به مهمترین بخش از کتاب مقدس می رسیم متا، مرقس، لغا و یوحنا حقیقتا قلب کتاب مقدس هستند. چون در واقع مفهوم واقعی کتاب مقدس، عیسی مسیح است و این چهار انجیل زندگی نامه های عیسی هستند. از اونجایی که مفهوم کتاب مقدس عیسی مسیح و این کتاب‌ها زندگی نامه های او هستند، وقتی به می رسیم در واقع به قلب کتاب مقدس رسیدیم. بنابراین اینها حقیقتا کتاب‌های مورد علاقه من هستند. وقتی بررسی متا مرقس، لوقا و یوحنا را شروع کردیم، مایلم که بگم هدف ارائه یک تحقیق پژوهشگرانه کتاب مقدس نیست، بلکه هدف تحقیقی متعهدانه است. وقتی به بررسی 27 کتاب عهد جدید می‌رسیم، در هر بار به پیام متعهدانه آن تاکید خواهم کرد. من مرتبا از شما خواهم پرسید این نویسنده کتاب مقدس چی میگه و منظورش چیه و این برای من و شما چه مفهومی داره من بر روی سوابق و یا برخی چیزهایی که در مطالعات پژوهشی کتاب مقدس با اون روبرو میشید بحثی نخواهم کرد فقط این رو خواهم پرسید که مفهوم اون برای من و شما چیه و چطور میتونیم اون رو در زندگی های روزمرهمون به کار بگیریم این چیزیه که من به اون میگم کاربرد عملی و متعهدانی کتاب مقدس حجم مطالبی که برای بررسی 27 کتاب عهد جدید مورد نیاز هست اونقدر وسیعه که من میتونم امیدوار باشم که بتونم فقط گلچینهایی از اون رو به شما نشون بدم وقتی عهد قدیم رو کتاب به کتاب بررسی میکردیم سعی کردم شما رو به بخشهایی از عهد قدیم ارجا بدم که محتوایی غنی و کاربردی داشتند. اینجا هم به متن‌های کلیدی متا مرقس، لغا و یوحنا اشاره خواهم کرد. سعی خواهم کرد با طرح سوالات و برانگیختن شما به تفکر در این متن‌ها، به شما بینشی از این متن‌ها بدم. اگر شما وقتی کتاب مقدس رو می‌خونید دنبال چیزی نباشید، هیچ چیزی پیدا نخواهید کرد. اما وقتی کتاب مقدس رو باز می‌کنید و دنبال چیزی هستید، و می دنبال چی هستید؟ به جواهرات بسیار ارزشمند و کاربردی دست خواهید یافت که زندگیتون رو تغییر خواهد داد. وقتی بررسی عهد جدید رو با هم شروع می کنیم، مایلم چیزی رو بگم که پولس رسول به تیموتاوس گفت: کتاب مقدس رو مطالعه کن. من واقعا تعجب می کنم وقتی با کسانی ملاقات می کنم که تحصیلات بسیار بالایی در همهی ارزها دارند، اما وقتی نوبت به کتاب مقدس میرسه اونها واقعا جاهل هستند. عیسی معمولا سوال می کرد آیا ای؟ حقیقت اینه که بسیاری از مردم هرگز کتاب مقدس رو نخوندن وقتی از کتاب مقدس ارجاعی داده میشه، حتی تحصیل کرده ترین افراد هم شرمنده میشن. وقتی پولس به تیموتاوس گفت کتاب مقدس رو مطالعه کن، پولس کلمه ای رو به کار برد که معنیش عملا این بود خودت رو وقف کن. همونطور که وقتی ما مهندسی پزشکی، حقوق و علوم رو مطالعه می‌کنیم، در واقع داریم خودمون رو برای اون مشاغل آماده می‌کنیم، ما حقیقتاً خودمون رو وقف مطالعه اون چیزها کنیم. اما در مورد مطالعه کتاب مقدس طوری رفتار می‌کنیم که گویی اون مرهمی روحانیه که به چشمانمون میمالیم. ما فکر می‌کنیم که می‌تونیم کتاب مقدس رو زیر بالشمون بذاریم و با نیروی جذب اسموزی می‌تونیم اون مطالب کتاب مقدس رو جذب کنیم. کتاب مقدس باید مطالعه بشه و من مایلم که رک و پوسکنده بگم اگر میخواهید که این دوره از مطالعه کتاب مقدس از دیگر دوره ها متفاوت باشه، تفاوتش میتونه دقیقا اینجا باشه. چقدر میخواید برای این مطالعه کوشش کنید چقدر وقت میذارید؟ مایلم تشویقتون کنم که حداقل سعی کنید در هر جلسه از بررسی یاه جدید با ما همراه باشید و همینطور متحدانه، کتاب های عهد جدید رو بخونید از خدا بخواید که با شما حرف بزنه به این درس ها با این هدف گوش کنید که هر چیزی رو که یاد می‌گیرید به دیگران هم تعلیم بدید پولس رسول همینطور در دوم تیموتاوس با به دو آیه دو برای تیموتاوس می نویسه و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی به مردمان امینی بسپار که از عهده آموزش دیگران نیز برآیند اینکه بررسی عهد جدید رو شروع می کنیم دعا میکنم که هر چیزی از این دوره مطالعاتی یاد می گیرید به دیگران هم انتقال بدید. چیزهایی که من به شما میسپارم چیزهایی که در این دوره از من دریافت می کنید همونها رو وفادارانه به مردمان امینی بسپارید که اونها هم متعهدانه به دیگران انتقالش بدن. این دوره با این رویا و با این هدف تعلیم داده میشه. بار قلب من اینه که ببینم، و خدا خودشون رو وقت کلام خدا میکنند و ببینم که کلام خدا وارد دل های مردم میشه در کتاب رومیان باب ده آیه 17 پولس رسول مینویسه پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میگردد چطور یه نفر ایمان پیدا میکنه به قول پولس ایمان از شنیدن مداوم کلام خدا سرچشمه میگیره حالا وقتی پولس این رو مینوشت اکثر مردم کتاب مقدس رو نمیخوندند. وقتی پولس اون رو می نوشت، اکثر مردم فقط می کلام خدا را بشنوند. اونها یک نسخه از کتاب مقدس مثل کتاب مقدس های امروزی نداشتند. پولس داشت گفت اگر شما مرتبا کلام خدا رو گوش کنید، معجزه ایمان در قلب شما اتفاق می افته. به عنوان کسانی که می در ایمان رشد کنند، ما می تونیم کلام پولس رو این طور بگیم: ایمان از شنیدن کلام خدا میاد. و وقتی کلام خدا رو با این هدف مطالعه می‌کنید که هر چیزی که کلام خدا میگه بپذیرید اون وقت میتونید معجزات بزرگی رو تجربه کنید. و ضمن اینکه کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنید میتونه ایمان وارد قلبتون بشه. در کتاب مقدس به ما گفته شده که باید توقع داشته باشیم که معجزه ایمان به وقوع پیونده. دعای من اینه که وقتی عهد جدید رو با هم بررسی می‌کنیم بسیاری از شما تبدیل بشید. وقتی که چیزهایی رو که با همدیگر یاد گرفتیم در سکوت خانه خودتون مرور می کنید دعای من اینه که تازه بشی قبل از اینکه شروع به تعلیم این دوره بکنم از یک بازرگان تلفنی داشتم او قبلا این دوره رو با من طی کرده بود او وقتی من تکالیفی رو که از کتاب مقدس به او میدادم می, دادم می خوند، تبدیل شده بود او حقیقتا تولد تازه یافته بود و حالا مهمترین چیز در زندگی او عیسی مسیح نجاتی که تجربه کرده بود و معموریتی بود که ایمان داره عیسی مسیح به او داده. ساعتی قبل از اینکه شروع به این جلسه بکنم، او زنگ زد. زن. گفت میخوام پشت تلفن با هم دعا کنیم که در این کلاس هم کسانی مثل من باشند که ضمن مطالعه کتاب مقدس تبدیل بشن. پس صادقانه بگم، هدف دعای من ضمن این دوره از بررسی کتاب مقدس اینه که برخی از شماها به این حقیقت کلام خدا برسید. و زمن خواندن کتاب مقدس تبدیل بشید. زمن مطالعه اناجیل باید بفهمیم که اناجیل مهمترین بخش از کتاب مقدس هستند. همونطور که عیسی مسیح مهمترین بخش کتاب مقدسه و این اناجیل هم زندگی نامه الهامی و مقدس او هستند. وقتی انجیل لغا رو میخونید، گفتگوی عیسی مسیح رو در پایان زمانش بر روی زمین بعد از مصلوب شدن و قیامش میبینید. در اون گفتگو چیزی درباره کتاب مقدس به شاگردان گفت که چشم اونها رو به درک کتاب مقدس باز کرد. اون مردان اگرچه سه سال با مسیح بودند کتاب مقدس رو نمیفهمیدند. کتاب مقدس نزدیک ترین کتاب به اونها بود. حالا چی بود که درک اونها رو از کتاب مقدس امکان پذیر کرد؟ در لغا 24 آیه 27 میگه سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آن چرا که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد. عیسی به شاگردان گفت: اینها سخنانی بودند که من وقتی با شما بودم میگفتم که تمام این چیزها که در کتابهای شریعت موسی و انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده باید به انجام برسد. و به این ترتیب چشمان اونها باز شد و توانستند کتاب مقدس را درک کنند. مردم تا زمانی که این حقیقت را درباره کتاب مقدس نفهمند که مفهوم کتاب مقدس عیسی مسیح است نخواهند توانست کتاب مقدس را درک کنند. کتاب مقدس کتاب تاریخ تمدن نیست. کتابی درباره آموزش منشأ انوا نیست، کتاب علمی هم نیست. کتاب مقدس کتابی در مورد نجات است. کتاب مقدس کتابی در مورد آزادیه. کتاب مقدس به ما زمینه تاریخی میده که در اون زمینه منجی ما بر روی زمین آمد و نجات ما میسر شد. کتاب مقدس زمینه تاریخی به ما ارائه میکنه که در اون ناجی ما که نجات رو برای ما به ارمغان آورد وارد این جهان شد. این مفهوم کلی کتاب مقدسه. وقتی شاگردان این رو شنیدند برای اولین بار کتاب مقدس رو درک کردند بدین معنی که عیسی مسیح کلید است. او منشه درک کتاب مقدس است و این چهار انجیل زندگی نامه های او هستند. پس وقتی به اناجیل می رسیم در واقع به قلب کتاب مقدس رسیده ایم. همینطور میخوام خاطرنشان خاطر نشان کنم که تمامی نظریه ها و الهیات باید با بزرگترین مکاشفه حقیقت خدا که به این جهان داده شده شروع بشن. تمامی الهیات باید با عیسی مسیح شروع بشن. در باب اول انجیل یوحنا آیه 18 گفته شده هیچ کس هرگز خدا را ندیده اما آن خدای یگانه که در بر پدر است همان او را شناسانید و یا او را آشکار کرد. زبان اصلی عهد جدید یونانی هست در زبان یونانی کلمه ای هست که به اون اگزجیزس میگند که به معنی استحصال هست بدین معنی که وقتی به آیه ای از کتاب مقدس می رسید، هر چیزی که از اون به دست میارید باید چیزی باشه که حقیقت اون آیه رو نشون بده اگر بخواهید تمامی حقیقتی رو که در آیه هست از اون بیرون بکشید به این مرحله اگزجیزس می نباید از آیات چیزی رو که در اون وجود نداره تعبیر کنید ما فقط مجاز هستیم که حقیقتی که در کلام هست از اون بیرون بکشیم نباید افکاری که در اون آیه نیست از اون استحصال کنید میخوام شما را به چالش وادارم از اون جایی که مفهوم کتاب مقدس عیسی مسیحه از وقتی کتاب مقدس رو میخونید دنبال عیسی مسیح بگردید. کتاب مقدس جایی نیست که در اون دنبال حقایق علمی در مورد منشأ انواع بگردید. اگرچه همونطور که در تفسیر دوره بررسی عهد قدیم اشاره کردم دیدیم که وقتی کتاب مقدس به پیدایش اشاره میکنه همونطور که به وضوح در پیدایش بابهای یک و دو اشاره کرده کاملا مانند کتب علمی دقیق هست. سوال مهمتر عملا این سواله اگر چه هدف و موضوع اصلی کتاب مقدس پیدایش و منشه خلقت نیست؟ آیا علم به دقت کتاب مقدس هست؟ مفهوم کتاب مقدس عیسی مسیحه بنابراین وقتی کتاب مقدس و مخصوصاً اناجیل رو میخونید اون رو طوری بخونید که عیسی مسیح رو ببینید کتاب مقدس رو بخونید و درک کنید و نجات عیسی مسیح رو در زندگی شخصیتون بپذیرید که عیسی مسیح وارد این جهان شد که این امکان رو برای هر کسی در این دنیا از جمله من و شما فراهم کنه که نجات پیدا کنیم وقتی یوحنا در باب یک انجیلش در آیه 18 میگه کسی هرگز خدا رو ندیده است اما آن فرزند یگانهی که در ذات پدر و از همه به او نزدیک تر است او را شناسانیده است او از کلمه اگزجیزست به معنی تفسیر استفاده کرده یوحنا به ما میگه که هیچ کس خدا را ندیده اما عیسی او رو تفسیر کرده. عیسی از حضور خدا تمامی حقایقی رو که انسان میتونه درباره خدا درک کنه نمایان کرده. حالا اگر این حقیقت داره که داره، پس معنیش اینه که عیسی مسیح بزرگترین مکاشفه حقیقت بود که جهان تا کنون به خودش دیده. هر چیزی که بود، هر کاری که کرد و هر چیزی که گفت، مکاشفه ای از خدا بود. وقتی عیسی چیزی گفت، وقتی کاری کرد، وقتی او چیزی بود، داشت خدا رو آشکار میکرد. عیسی مسیح بزرگترین مکاشفه خدا بود که تا کنون جهان به خودش دیده. انجیل یوحنا در ادامه ما رو به قلب کتاب مقدس میرسونه چون این کتاب هایی هستند که در مورد ایسایی که خدا رو آشکار کرد صحبت میکنه. میشه هجده همین آیه باب یک انجیل یوحنا رو به عنوان مقدمه بر چهار انجیل بدونیم. آیه دیگری در باب یک انجیل یوحنا هست که مفهوم چهار انجیل دیگر رو به ما میگه. یوحنا یک یک میگه در آغاز کلام بود. به عیسی اشاره میکنه. و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. در آیه چهارده همون باب ما اینطور میخونیم. و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزی سالها پیش برادر کوچکترم در یک آپارتمان کوچک با من زندگی می کرد. من دانشجوی الهیات بودم و او نوجوان بود. اگر خانهدار خوبی نباشید، مرچه ها براتون دردسر بزرگی می‌شن. من و برادرم خانه‌دارای خوبی نبودیم. ما شکر و مارمالاد رو, رو روی میزها رها می کردیم و وقتی شب به خونه بر می برمیگشتیم، میز پر بود از مرچه ها. یه روز شنبه تصمیم گرفتیم مشکلمون رو حل کنیم. ما فهمیدیم که همه مورچه ها از یک سوراخ بزرگ در گوشه ای از حیات به داخل میاد. ما حتی میتونستیم حرکت دست جمعی اونها رو که به آپارتمان رفت و آمد میکردند ببینیم. در تلاش برای از بین بردن مورچه ها مقداری گازوئیل در سوراخ اونها ریختیم و آتیش زدیم. شعله ها بالا می رفت و مورچه ها پایین رفتن. وقتی شعله ها فروکش کردند و خاموش شدند، مورچه ها دوباره بیرون آمدند و رفت آمد اونها به آپارتمان شروع شد. وقتی من و برادرم به صف ها نگاه می‌کردیم به برادرم گفتم می‌دونی این منو به یاد انجیل میندازه او آهی کشید و گفت لطفاً به من هم بگو او میدونست که یک موعظه خواهد شنید من گفتم خب بیا اینطور بهش نگاه کنیم ما از مرچه ها نفرت نداریم فقط نمی‌خوایم که روی میزمون بیان و وارد ظرف شکرمون بشن یا به آشپزخونمون بیان حالا فرض کن ما می‌تونستیم با این مورچه‌ها ارتباط برقرار کنیم با اونها صحبت کنیم فرض کن میتونستیم به اونها بگیم ببینید ما از شما نفرت نداریم. فقط نمیخوایم که وارد ظرف شکر ما بشید یا روی میز آشپز بیاید. ما یک کیلو شکر برای شما گوشه حیات میذاریم، اما شما باید بیرون آپارتمان بمونید و داخل خونه نیایید و اونها قطعا به طرف اون شکر میرففتند اما مشکل اینه که ما انسانیم و اونها مورچه انسان و مورچه نمیتونن با هم گفتگو کنند. میتونی اینطور فرض کنی که اونها وقتی میان و میرن با همدیگه گفتگو میکنند اما ما نمیتونیم تا زمانی که انسان هستیم با اونها صحبت کنیم حالا تخیلت رو به کار بگی تصور کن میتونستی هر کاری رو که میخواستی انجام بدی و اونقدر مورچه ها رو دوست داشتی که به خاطر اونها تصمیم میگرفتی مورچه بشی و البته ممکن بود کسی تو رو لگت کنه و از بین بری اما به هر حال تصمیم گرفته بودی که مورچه بشی و بری پایین و وارد لانه اونها بشی و به یکی از اتاقهای کنفرانس اونها بری و به اونها بگی آهای مرچه ها. من ظاهراً یک مورچه هستم اما در واقع یک مورچه نیستم. من انسان هستم و در اون آپارتمان بزرگ زندگی می کنم و پیشنهادی براتون دارم. مایلم که یک قربانی براتون بدم به شرطی که با هم به توافق برسیم. میدونم که این مثال مضحکیه، اما متوجه میشید شید چی می خوام بگم. خدا کلامی داشت که میخواست اونو با انسان درمیون بذاره. خدا حقایقی داشت که میخواست با انسان درمیون بذاره. او میخواست با انسان عهدی ببنده. خدا مایل بود که قربانی بزرگی بده تا عهد خودش رو با انسان ببنده. اما او خدا بود و ما انسان. قطعا برای انسان این افت بزرگیه که بخواد یک مورچه بشه. کتاب مقدس میگه وقتی خدا انسان شد این بزرگترین توافقی بود که بر سر فروتنی بین پدر و پسر واقع شد. میتونیم مثال بهتری بزنیم و تصور کنیم که انسان یک سوسک شد تا بتونه سوسک رو نجات بده. کتاب مقدس از بزرگترین تحقیر صحبت میکنه که با جسم پوشیدن عیسی صورت واقع به خود گرفت. یعنی خدا جسم انسانی به خودش پوشید. یوحنا این تجسم رو توصیف میکنه وقتی میگه در ابتدا کلام بود و کلام انسان خاکی شد کلمه وسیله ای برای بیان یک اندیشه من اندیشه در ذهنم دارم و می اون رو به ذهن شما منتقل کنم وسیله ای که این اندیشه رو از ذهن من به ذهن شما منتقل میکنه کلمه هست حالا نظریه هست که میگه خدا فکری در ذهن داشت و میخواست که اون رو از ذهن خودش به ذهن انسان منتقل کنه خدا به کلام نیاز داشت خدا به وسیله ای نیاز داشت که اون اندیشه رو انتقال بده و اون کلام میثاب بود عیسی هر چیزی که بود، هر کاری که کرد و هر چیزی که گفت کلام بزرگی بود که خدا خطاب به این جهان اعلام میکرد. حالا با توجه به این وقتی به اناجیل میرسیم که به اونها زندگی نامه مسیح گفتیم، این کتاب ها به ما نشون میدن که او کی بود، چه کارهایی انجام داد و به ما خواهد گفت که او چه چیزهایی گفت. بذارید دوباره تأکید کنم و تکرار کنم وقتی که به می رسیم، در واقع به قلب کتاب مقدس رسیم. در باب پنجم انجیل یوحنا، عیسی سرگرم صحبت با رهبران روحانی بود. رهبران روحانی شنیدند که عیسی ادعا می‌کرد که او فقط یک انسان نیست. او ادعا می‌کرد که خداست. یا همونطور که در مثالمون گفتیم، او در واقع فقط یک مورچه نبود، او انسان بود. این ادعای ای بود که او داشت و البته اونها به این باور نمی‌کردند. اونها دلیلی میخواستند که ثابت کنه او همون چیزی هست که ادعا می‌کنه. باب پنجم انجیل یوحنا گفتگوی مهیجی بین عیسی و رهبران روحانی زمان خودش رو ثبت کرده. عیسی میگفت اگر واقعاً بخواهید ادعاهای منو باور کنید به حد کافی دلیل دارید. شما معجزات منو دیده اید. معجزات من باید به شما نشون داده باشه که من فقط یک انسان نیستم. شما موسی رو دارید فکر می کنید که موسا بزرگترین انبیاس خب موسی هر چه نوشت درباره من بود شما یحیای تعمید دهنده رو نبی بزرگی میدونید. دونید یحیای تعمید دهنده گفت او حتی لایق نبود بند کفشای منو ببنده وقتی من تعمید گرفتم کلامی از سوی پدر آمد و شهادت داد که من کی هستم وقتی عیسی این شواهد رو عنوان میکرد که اونها به عنوان مدرک میتونستن به اونها مراجعه کنند و بفهمند او همونی هست که میگه ایسا به اونها گفت شما کتاب مقدس رو میکاوید زیرا می‌پندارید به واسطه آن حیات جاویدان دارید این اون جاییه که عیسی به ما چیزی درباره خودش میگه که در کتاب‌ها اومده اوسوال چمبرز میگه این آیه کلیدی تمام کتاب مقدسه عیسی در ادامه صحبتش به اونها میگه ها که همین کتاب‌ها بر من شهادت میدهند اما نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید بنا به عیسی شما با متخصص کتاب مقدس شدن حیات ابدی پیدا نمی کنید. او درباره کتاب مقدس اینطور گفت. کتاب بر من شهادت می دهند. تمامی این کتاب ها درباره من نوشته شدهاند. عیسی مرتبا این رو به مردم می گفت وقتی ما این رو درک کنیم وقتی متوجه بشیم که تمامی کتاب مقدس مربوط به او هست میتونیم این حقیقت رو درک کنیم که حالا به قلب کتاب مقدس رسیدیم چونکه این چهار کتاب، تماما درباره او با ما صحبت میکنن ما بررسی عهد جدید رو از چهار انجیل شروع میکنیم بنابراین میخوام فقط یک کلمه درباره دیدگاهمون درباره عهد جدید بدم یادتونه که وقتی بررسی عهد قدیم رو شروع کردیم گفتم که کتاب مقدس به مشکلات بنیادی میپردازه در ابتدا خدا و انسان با هم بودن اونها یکی بودن اما کتاب مقدس در باب سه پیدایش میگه که خدا انسان رو موجودی با اراده آزاد خلق کرد که هیچ شباهتی به هیچ کدام از مخلوقات دیگر نداره. انسان از اول آزادی و حق انتخاب داشته که از خدا رو بگردونه. خدا نقشه یه حیرت انگیزی برای انسان داره اما انسان آزاده که انتخاب کنه. انسان میتونه و تصمیم میگیره که از خدا و تمامی نقشه‌های خدا برای او برگرده. خدا اجازه میده انسان این تصمیم رو بگیره وقتی انسان تصمیم میگیره از خدا برگرده خدا به این گناه میگه کتاب مقدس میگه خدا نمیتونه به گناه نگاه کنه پس خدا هم از انسان برمیگرده و یک جدایی اتفاق میفته جدایی بین خدا و انسان این مشکلی بنیادی هست که هم عهد قدیم و هم عهد جدید به اون اشاره کردند حالا عهد قدیم رو میتونید اینطور خلاصه کنید در عهد قدیم خدا به انسان میگه وقتی من میگم کاری در مورد اون جدایی انجام خواهم داد باور کن من به این جهان خواهم اومد و هر کاری که لازم انجام خواهم داد تا بتونم با مخلوقاتم آشتی کنم وقتی میگم این کار رو خواهم کرد به من باور کنید در عهد قدیم میشنوید که کسی مثل ایوب با تمام رنجهایی که میکشه چنین چیزی میگه آه کاش کسی بود که میتونست منو خدا رو با هم یک جا جمع کنه من خدا رو درک نمیکنم. من درک نمی کنم چرا او اجازه میده من رنج بکشم کاش کسی بود و میتونست تونست من و خدا رو یک جا جمع کنه من سوالات زیادی دارم نمیتونم خدا رو درک کنم ای کاش وکیلی داشتم که میانجی بین من و خدا می شد در اوج رنجهاش با چنان دعایی در قلبش ایوب نبوتی مکاشفه ای می کنه ایوب با این کلمات زیبا آینده رو پیشگویی میکنه. اما می دانم که نجات دهنده من در آسمان است و روزی برای دفاع من به زمین خواهد آمد یقین دارم که حتی پس از آن که گوشت و پوست بدنم بپوسند خدا را میبینم او برای من بیگانه نیست او را با همین چشمان خود خواهم دید با مکاشفه ای خدا خودش را برای ایوب آشکار کرد اما اگرچه او از این چیزها مطمئنه با این حال میشه که ایوب میگه ای کاش می دونستم. کجا میتونم او رو پیدا کنم؟ عهد جدید میتونه اینطور خلاصه بشه خدا در عهد جدید به ما میگه آیا وقتی گفتم کاری برای حل این جدایی کردم منو باور میکنید؟ عهد جدید میگه خدا انسان شد خدا وارد این جهان شد خدا جسم پوشید به عنوان خدا که انسان شد کسی که هم خدا و هم انسان بود همونطور که آیین ما میگه خدا بر صلیب مرد مرگ خدا بر صلیب. آشتی بین انسان و خدا رو امکان پذیر کرد پیام خطاب به تمام کسانی که عهد جدید رو باور کردند اینه بروید و خبر خوش رو به همه بدید خدا با شما آشتی کرده برگردید و با او آشتی کنید پولس رسول میگه این پیامیه که به ما سپرده شده این مأموریتیه که به ما سپرده شده به این بشارت میگن به چهار کتاب متا مرقس، لغا و یوحنا مجده میگن چون مجده به معنی خبر خوش هست. خبر خوش اینه. من اون جدایی رو از میان برداشته و آشتی کردم. آیا وقتی میگم با شما آشتی کردم باور میکنید؟ در سراسر عهد قدیم شما میشنوید که کتابهای انبیا و کسانی مثل ایوب اینطور میگند. میدونیم که این اتفاق خواهد افتاد. وقتی خدا میگه که آشتی رو خواهد داد این رو باور میکنیم. فقط ای کاش میدونستم کجا میتونم کسی رو پیدا کنم که منو با خدا آشتی بده در عهد جدید ما میشنویم که کسانی مثل اندریاس برادر شمعون پتروس به سرعت نزد برادرش پتروس میره و میگه ما مسیح را پیدا کرده ایم. شما میشنوید که عیسی نزد چاهی در سامره ایستاده و زنی به او میگه من میدونم که روزی مسیح خواهد آمد و همه چیز رو اصلاح خواهد کرد و باز میشنوید که عیسی میگه من که با تو صحبت می کنم همانم من مسیحم خوب، این خلاصه عهد قدیم و عهد جدید هست. به این دلیل به چهار کتاب اول عهد جدید انجیل یا خبر خوش گفته شده خوب، این خلاصه عهد قدیم و عهد جدید هست. به این دلیل به چهار کتاب اول عهد جدید انجیل یا خبر خوش گفته شده اونها خبرهای خوشی هستند حاکی از اینکه خدا با انسان آشتی کرده و جدایی بین خود و مخلوقاتش از میان برداشته. وقتی که به بررسی عهد جدید میرسید و شروع به مطالعه کتاب های متا مرقص لغا و یوحنا می‌کنید، از خودتون بپرسید این خبر خوش چیه؟ آیا واقعا خبر خوش رو درد کردید؟ مخصوصا از خودتون این سوال رو بپرسید آیا من به این خبر خوش ایمان دارم؟ باز هم هدف و دعای من ضمن بررسی عهد جدید اینه که اگر شما با خدا آشتی نکرده اید، در نتیجه بررسی عهد جدید، آشتی و صلح با خدا رو تجربه کنید. وقتی با خدا آشتی کردید، اون وقت میتونید با خودتون و مردم اطرافتون هم آشتی کنید. در واقع پیام عهد جدید اینه، به دنبال اون پیام بگردید. صلح با خدا، صلح با خودتون و صلح با دیگران به خاطر انجیل عیسی مسیح. دانشوی عزیز، اگر اولین بار هست که با ما همراه هستید، امیدواریم که مرتبا در کلاس های ما که 27 کتاب عهد جدید رو می میکنیم شرکت کنید. خدا چیزهای زیادی داره که به ما یاد بده. به ما یاد بده تا ما هم بتونیم به دیگران یاد بدیم. اشتیاق خدا اینه که ما با اون در آشتی باشیم. رابطه درستی با اون داشته باشیم تا بتونیم دیگران رو به شناخت عیسی مسیح هدایت کنیم. تا اونها نیز بتونن رابطه درستی با خدا داشته باشن. اگر تا کنون به عیسی مسیح به عنوان ناجی شخصی خود ایمان نیاوردین، شما را تشویق می‌کنیم امروز این کار رو بکنید. عزیزان، تا برنامه‌ی بعدی امیدواریم قلب شما سرشار از فیض محبت و آرامش اون باشه.